صحیفه معرفت شرح دعای هفتم صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه هفتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل الله علی نبینا و آله طیبین الطاهرین المعصومین لا ما بقیت الله فی الارضین همون گونه که استظهار دارید با توجه به صحیفه سجادیه از مولایمون امام سجاد علیه السلام، و درسهای زندگی را در این راستا پی می که چه کنیم؟ رفتار ما، کردار ما در مراحل مختلف زندگی رفتاری باشد که خداپسندانه گردد و اگر انسانها در طول زندگی به صور مختلفی زندگی می کنند، حتی گاهی خود اونها از نحوه زندگی یک بره از دوران و عمرشون پشیمان و نادمان علت این که برخی اعمال ما به گونه است یا خودمون به ندامت میافتیم یا دیگران وقتی به اعمال و رفتار ما نگاه میکنند اون را نمیپسندند چه باعث می شود؟ علت چیست آیا از باب علت واقعه رو قبل از وقوع باید کرد ما معالجه یک حادثه و رخداد رو قبل از اینکه رخ بده به فکر پیشگیری باشیم، این ارزنده تر بهتر عاقلانهتر نیست، پس یکی از مهمترین جنبه نحوه زندگی ماست. به جاس ببینیم بزرگوارانی که خوب زیستن و نحوه زیستن ما را به ما میآموزند چه فرمودهاند از آموزه های آنها درس فرا بگیریم. یکی از مهمترین منبعی که در اختیار ماست کتاب عظیم صحیفه سجادیه است که امام سجاد علیه السلام به های مختلف این راه و روش و طریقه زندگی را به ما آموزش میدهند در دعای 17 تحت عنوان دعا و از خدا خواستن که عوامل انحراف و اسباب و عللی که در درون انسان نفوذ می کنند، تا انسان را وادار به حرکات ناپسند بکنن با خداوند راز و نیاز دارند و دعا می کنن اینگونه می آموزن. به ما میفهمانند که در درون ما امکان نفوذ شیطان هست و اگر ما نخواهیم جلوه شیطان را بگیریم اوامل شیطانی رو از خود دور نکنیم مسلما رفتار و حرکات ما شیطانی خواهد شد لذا در دعای هبده از صحیفه سجادیه با این بیان حضرت شروع کردند اللهم انا نعوز و بکم نزغات شیطان رجیم نزغ شیطان را به عنوان عاملی که در درون انسان باعث تحریک به اعمال ناپسند می شود مطرح کردند عباراتی رو تا رسیدیم به این قسمت اللهم مخصه و ان به عبادتک که این قسمت در جلسه قبل بحث شد که خدایا کمکم کن تا با عبادت تو بتوانم شیطان رو از خودم دور کنم اما مطلبی که از این جلسه پی میگیریم گیریم ادامه فرمای شاتون حضرت در صحیفه در این رابطه اینگونه می شود و اکبت به دعو بنا فی محبتک کبت یعنی حلکه خ... یا امری که باعث خاری و ذلیل کردن حلاک کردن از بین بردن می شود اکبت خدایا خار کن او را ذلیل کن و به هلاکت برسن اما چگونه یعنی خدایا من از تو میخواهم که تو شیطان را حلاک کنی از بین ببری و من اصلا در مقابل شیطان احساس خطری نکنم اگر این معنا درست بود خب از ابتدای خلقت خداوند که قدرت داشت به شیطان عمر ندهد و او را از بین ببرد طبق آیات سریح قرآن کریم وقتی ابلیس به پروردگار دارد به من عمر بده و مرا باقی نگهدار خداوند این درخواست او را میپذیرد اما همان گونه که در نظام زندگی انسانی که موجود دو بعدی است عقل قرار گرفته پیغمبر و امام در بیرون از وجود او قرار دارند هم عقل به او جهت می‌دهد هم پیغمبر و امام و جانشینان آنان عالمان و مربیان حقیقی انسانی در هر گوشه و کنار عالم تلاش میکنند تا انسان رو به سوی های والای انسانی سوق بدهند اما نقطه مقابل در درون ما هوای نفس شهوات در بیرونم ابلیس و عوامل ابلیسی عامل انحراف میشوند. اگر انسان به گونه‌ای بود که در معرض خطر شیطان و در معرض کشش‌های هوای نفس قرار نمی‌گرفت، خب فرشته‌ای بیش نبود. این همه ارزش و رجحانی که انسان پیدا کرده بدین جهت است که در این دو کشش و دو تمایل قرار می‌گیرد، کدام یک از این دو راه را بر برمی‌گزیند؟ همان گونه که حضرت حق در قرآن کریم اشاره میفرماید انا حدینا خود اما شاکرن و اما کفورا ما راه را نشون می دهیم معرفی می به این ها می راه شیطانی کدام است راه رحمانی کدام است اما شاکرن و اما کفورا اما شاکر بودن استفاده بردن و از این همه امکانات در مسیر درست بهره جستن یا خدایی نکرده کفران نعمت کردن و از این امکانات استفاده و بهره نبردن این به اختیار خود انسان هاست پس این بیان امام سجاد علیه السلام که در غالب دعا از پروردگار میخواهد خدایا از تو میخواهم که و اکبتو او را حلاق کنی او را خار و ذلیل کنی یعنی تأثیر بخشیش را از بین ببری اما ادامش خود حضرت این رو مشخص میکنن به دعوب نا فی محبتک دو تا قید گذاشتن که حقیقتا این دو تا قید در خور تعمق بسیار زیادی است. یکی دعوب نا دو این کوشش تلاش رنج فراوان دیدن در یک کار رو میگن دوبه بنده ممکنه الان مثلا میخوام در یک مزرعه حاصلی بردارم یه وقت هیچ کار نمیکنم کنم خب طبیعیست که حاصلی ندارم یه وقت در این مزرعه کار میکنم ولی کار جدی نمیکنم چون رنج دارد باید زحمت زیادی را تحمل کنم یک کار سطحی و مجملن شخمی کردن و احیانن یه بذری پاشیدن و یه مختصری هم به آبیاری توجه کردن ممکنه یه حاصل مختصری هم گیرمن بیاد اما یه وقت میگم اون چه تلاش این مزرعه لازم دارد باید به کار ببرم و جدی کار کنم اینجا حالت دوعبه میشه یعنی خیلی کوشا بودن و رنج فراوان رو در این مسیر تحمل کردن امام سجاد علیه السلام از خدا درخواست میکند خدایا به من کمک کن از تو میخوام که من اینجوری بشم وقتی میخوام شیطان هلاک بشود یعنی نتواند در من تأثیر بگذارد من توانی داشته باشم که جدی و کار پر با رنج و فراوانه بسیار هم لازم است تحمل کنم و کوشایی حقیقی داشته باشم لذا و اکبت به دعو بنا با این کوشش و جدیتی که من می کنم اما قید دومی که در اینجا حضرت به کار می فی محبتک این کوشش و رنج فراوان من که در محبت توی پروردگار هست این باعث شود که شیطان خار و ذلیل شود حالا راجع به این محبت باید کمی بحث کنیم با توجه به معنی محبت کوشش و جدیتی که در راه محبت خداوند لازم است، این رو با همدیگه دیگه پی بگیریم ببینید انسان وقتی کاری رو میخواد انجام بده معمولاً یا انگیزه درونی او امید به منفعت است همون مزرعه که من مثال زدم فرض کنید امید به این که من امسال از این مزرعه حاصلی برمیدارم در من قدرت ایجاد میکند تحریک شوم و بدار به کار بشم لذا کار میکنم هر کسی هم از من بپرسد چه میکنی میگم مشغول کشت و زرعم به امید اینکه انشالله از این طریق حاصل مورد نظر من گیرم بیاد گاهی در اثر ترس و خوف و نگرانی است من مثلا الان مزرعه رو کاشته ترس اینکه نکنه میکروب ها بیان هجوم بیارند یا یک خطری مزرعه مرا تهدید کند میام سمپاشی میکنم یا دیوار و مانه و حائری از اینکه حیوانات وارد نشند و مزرعه مرا خراب نکنند میگن چرا این کارو میکنید میگم نگرانم که مبادا این خطر وارد شود و من بهره که بناس ببرم نمیبرم گاهی انسون ها اعمال عبادیشون رابطه با پروردگارشون را در همین حد خلاصه میکنند یا به امید اینکه خداوند به آنها پاداشی انایت کند در پیشگاه خدا اجر و مزدی داشته باشند این رجا و امید آنها را وادار به حرکت می میکند به امید اینکه خدا اونها را بپذیرد با شیطان در درمیافتند یا گاهی بر مبنای خوف که عرض کردم خائفن نکنه خدا آنها رو جهنم ببره نکنه اگر سراغ شیطان برند و پیشنهادهای شیطان را بپذیرند خداوند آنها را به بهشت نبرد این خوف و نگرانی وادارشون می میکند که اعمال و حرکاتی داشته باشند. ولی طبق آیات قرآن کریم و این فراز از صحیفه سجادیه و تمام احادیثی که از سنت معصومین علیهم السلام به ما رسیده همچنین تحلیل عقلی که میتوان کرد به اقتضای فرصتی که برای این بحث خواهیم داشت و انشاء الله بحث خواهم کرد از این دو عامل آمل بالاتری مطرح است اون عامل محبت است همونطور که در مورد غیر رابطه ما با خدا اگر محبت آمد از امید و خوف تأثیر بیشتری دارد بین ما و خدا هم اگر رابطه رابطه محبتی شد تأثیر بسیار بیشتری خواهد پیدا کرد حالا با مثال وارد می شدم. مثال مزرعه زدم بنده به امید اینکه حاصل بردارم خب کشاورزی میکنم از ترس اینکه مبادا الان فلان خطر مرا تهدید کند این کار کشاورزی رو انجام میدم ولی اگر مثلا کشاورزی رو دوست داشته باشم من رابطه محبتی بر فرض با کشاورزی پیدا کرده باشم الان که مشغول این کارم حتی اگر به من بگن معلوم نیست شما حاصلی بردارید یا خطری شما رو تهدید نمی کند میگم دوست دارم این کار را انجام بدم در روایتی از امام صادق علیه السلام و سلام برای ما نقل شده که حضرت سلیمان پیغمبر که زبان حیوانات را میدانست از ایشون سؤال شد شما که زبان حیوانات را میدانید در چه غضیه ای از قضایه حیوانات تعجبی به شما دست داد؟ یا تون تغییر کرد حضرت سلیمان فرمودند ای را دیدم تپه نسبتا عظیمی از خاک را با این نیش و دهان خودش تیک تیکه خاک رو میکن، به جای دیگه میبرد و برمیگشت از مورچه پرسیدم چه میکنی گفت میخواهم اون تپه را خاکش رو جابجا کنم به این طرف بیاورم گفتم شم عمرت کفاف نمیده و این کار رو نخواهی توانست کرد برای چی این کار رو میکنی؟ گفت عاشق یک مرچهی شده هم میخواهم با او ازدواج کنم شرط ازدواج را این قرار داده که اگر اون تپراکندی و به این طرف آوردی به ازدواج تو درمی آیم و من مشغول این کارم حضرت سلیمان میفرماید گفتم این کار که عملی نیست عمر شما کفاف نمیدهد مورچه در جواب گفت یا نبی الله میدانم ولی چون او را دوست دارم اون چه او میخواهد دارم انجام میدهم همین مرا قانع میکند در راستای خواسته دوست حرکت میکنم این معنای محبت میشود یعنی اگر انسان چیزی را دوست داشت به نفع و زررش فکر نمیکند بلکه به اون رابطه محبتی مینگرد در مناجات محبین که یکی از مناجات های خمسه عشر است امام سجاد علیه السلاط و سلام رابطه خود با خدا را که درخواست می کند. ابتدای مناجات چنین بیان می دارد الهی منزل لذی زاغ حلابت محبتک فرام منکب بدلا خدایا چه کسی است زاغ حلاوة محبتک شیرینیه محبت تو را چشیده باشد فرام منکه بدلا و این حاضر بشه که یک بدلی یک عوضی غیر از تو را برگزیند و به او آرام بگیرد یعنی وقتی خدا رو دوست داشت رابطه محبتی با خدا پیدا کرد هیچ چیزی را جای اونی که خداست قرار نمیده ما الان مثلا در بین بسیاری از افرادی که حتی تدیون هم دارن مثلا کار خلافی میکند اگر بپرسیم چرا این کار کردید میگه بله شیرینی این کار نظر مرا جلب کرد منفعت این کار مرا گول زد یا ترس از فلان عامل که مبادا چنین و چنان شود این کار رو کردم حالا اگر این فرد به مقام محبت میرسید حب به خدا به گونه ای می میشود که تمام این امیدها و خوفها را تحت شعا قرار میدهد الهی منزل لذی زاغ حلاوت محبتک فرام من که بدلا چه کسیه وقتی تو محبت تو رو چشید حاضر بشه چیزی دیگهای بگذاره اگر به این انسان بگن صد میلیون دلار به تو رشوه میدیم این کار خلاف را انجام بده اون زیبایی و شیرینی که این سد هزار دلار ایجاد میکند یا اون نفع و منفعت و امید به ثمراتی که از طریق این صد هزار دلار برای این فرد پیش میاد در یک کفه ترازو ولی دوستی با پروردگار در یک کفه دیگر چون خدا را دوست دارد این دوستی نمیگذارد اون کار را بکند میگه چون دوست من این را نمیپسندد امام باغر علیه السلام در یک روایتی که منصوبه به ایشان است در قالب شعر از امام نقل شده این شعر منصوبه به حضرت است این گونه فرمودن تأسل اله و انت تظهر حبه حبهو حازال عمری فی الفعال بدیعو لوکان حبك صادقا لعتعتهو ان المحب لمن یحبو متیعو معصیت خدا میکنی در این حال اظهار دوستی پروردگار مینمایی به جانم سوگند امر شگفتانگیز و تعجب است لوکان حبو که صادقن اگر حب شما صادقانه بود لعتعتهو متی می شدید المحب بل من یحبو متی او همین معنا در قرآن کریم به چه صورتی آمده در سوره آل امران آیه شریفه سی و یک خداوند به پیغمبر میفرماید قل قل ان کنتم تحبون الله ای پیغمبر به این مردم بگو ان کنتم تحبون الله اگر شما انگونه هستید که خداوند را دوست می دارید فتبعونی پس مرا اطاعت کنید و تبعیت کنید یعنی اگر کسی واقعا خدا را دوست داشت میکوشد ببیند محبوب او چه میخواهد خواسته محبوب را بشناسد بعد از آنکه خواسته محبوب را شناخت طبق خواسته محبوب عمل کند. الان ما دو نفر سر میز غذایی نشسته باشیم و من به فرد دیگری که در مقابلم نشسته اظهار بدارم واقعا شما را دوست دارم. او بگوید من از این که سر این میز غذا مثلا شراب مشروبات الکلی باشد رنج میبرم و نمیپسندم بنده بگویم شما را دوست دارم ولی سفارش میدهم نعوذ بالله که مشروبات الکلی رو میز من بگذارن هر کسی مرا ببیند و این حالت رو دریابد قطعا معترض خواهد شد میگه شما میگی دوست دارم اما وقتی محبوب شما در مقابل شماست و او از این که مشروبات الکلی روی میز باشد رنج میبرد پس چطور این کار انجام میدید لذا در آیه سی یک سوره آل امران خدا به پیغمبر میفرماید قل ان کنتم تحبون الله بگو ای مردم اگر خدا را دوست دارید فت تبعونی پس مرا تبعیت کنید چرا؟ چون اون چرا که خدای شما که محبوب شماست می خواهد به من گفته است و یاد داده است و من هم اون رو دارم برای شما بیان می کنم دوست دارید محبوبتون چه گفته تبعیت کنید در سوره بقره آیه 165 و منم ناس من یتخذ من لاه لاح اندادا یحبونهم که حب الله و لذین آمنو اشد و حبن لله میگه از انسانها کسانی هستند یتخزون من دون الله اندادا غیر خدا را یه اموری که خدایی نیست غیر از حضرت هد اینها را برمیگذینن مثل خدا و مانند و شبه خدا براشون حساب میکنن و دوست میدارن آنران را اونچنانی که باید خدا را دوست بدارن این اعتراض قرآنه که چرا اینجوری میکنن اما والذین آمنون اونایی که مؤمن شده اونهایی که حقیقت دین را پذیرفته‌اند اشد دوحبن لله شدیدترین و بیشترین حبشون برای خداست چون این نیاز به توضیح و بحث داره من جمبندی میکنم بحث امروزم رو ان شاء الله ادامه شو در جلسه بعد خدمتون توضیح خواهم داد اگر امام سجاد علیه و سلام در این فراز از دعای 17 صحیفه سجادیه بیان می‌کنند خدایا از تو میخواهم و اکبد به دعو بنافی محبتک ای خدا شیطان را خار کن شیطان را ذلیل و بی‌اثر بگردان بدو او بنافی محبتک با اون کوشش و جدیت و تحمل رنج در کارهای من که در راستای محبت تو انجام میدم مجملی از محبت توضیح دادم انشاءالله جلسه بعدیم باز این بحث محبت رو اجازه میخوام یه مقداری بیشتر باز کنم و توضیح بدم اونگاه این فراز رو بتوانیم جمبندی کنیم و نتیجه بگیریم و سلام علیکم